تو سر وگر به خرامی دمی به گلزاری خورت ز غیرت روی تو هر گلی خاری ز کفر زلف تو هر حلقه ای و آشوبی ز سهر چشم تو هر گوشه ای و بیماری من رو تو بخت منی چشم مست یار بخواه که در پی از هر سوی تاه بیداری نصار خاک رهد نقد جان من هرچند که نیست نقد روان را بره تو مقداری دلا همیشه مزن لاف ظلف دل بندان چو تیر رای شوی که گشایدت کاری سرم برفت و زمانی به سر نرفت کار دلم گرفت و نبودت غم گرفتاری چون نقطه گفتمشن در میان دایر آی به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگاری